حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر بلک چون بلدی بخندی و چشم دل ببازه با اش دل ببندی هجما که دل سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا پیش با که قلب سبزت پیچیده, پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام فرده. همگی خوبی خوش چه خبرم؟ من فرشل منافی نیستم اه اه. در خدمتتونم نیستم الان خودش میاد. علیه. سلام علیکم خوبین شو... این کی بود؟ چی... خانومه چی شد؟ خوبین؟ خوشین این سلامت؟ خانومه چی می چی مرسی ازتون ببین شما ببین جنس صداتو دوست داشتم جنس صدات خوب بود منطقه یکم بعد رو تحریرات کار کنی شما آره به حال دوستان لطف دارن دیگه چه خبر ها خوبین؟ خوشی سلامتی چی کارا امروز دوشنبه 21 دیمای 1394 این برنامه برنامه 964 رومین برنامه رادیو پسورده دیگه 26 تا نه 26 تا چه 36 تا میخوام کم تر کتیز کنم 36 تا برنامه بود. بای بای ما رفتیم خب چه خبره خوبین قهر بودین کردین آشتین آشتین آشتین آشتی آشتین نکردین هنوزده خب به جنبین دیگه بابا یعنی چی برنامه همون به قهر آشتی آشتیه این هفته گفتیم هم باید آشتی کنن میگن جلوی زرر رو از هر جا بگیری منفعته این هم همونه یعنی جلوی قهر رو از هر جا بگیرین خوبه آشتی کنین خوبه ماهی رو هر وقت قضا بگیری تازه است کلا تمام مسائل ها رو الان یه دفعه همه یادم افته. آدم قهرو هم هر وقت ماچش کنی آشتی ها اینو یادتون نره. هر وقت آدم قهرو ماچش کنی آشتیه تمومه. به خدا اینقدر راحته اینقدر راحت. حالا بگذاریم امروز میخوایم بریم سراغ قهر و آشتی بین علما و بزرگان و نظام ببینیم در عرصه سیاست داخلی قهر و آشتی ها بین مقامات لشکری و کشوری معمولا چه جوری اتفاق میافته؟ پس با کسب اجازه از مؤذن له همین ابتدای برنامه یک سلامی عرض می‌کنیم خدمت اکبر خودمون نه اکبر میکروفون طلا نه آقای حاجبی رفسنجانی بر حال میدونید دیگه این برنامه ما لاقای رفسنجانیه عین باقی چیزایی که ما لاقای رفسنجانیه این برنامه هم بارها گفتیم که ما لاقای اصلا خودشون چک مینویسن بر ما شخصا امضا میکنن گاهی اوقات چکاشون پاس نمیشه ولی حالا بر هر حال خواستیم سلامی از کنیم خدمت آقای رفسنجانی که بر هر یه پای ثابت قهرواچتیهای نظام هستن یه یادیم میکنیم از معظم کبیر و فقید که نه این ها اون معظم کبیر کبیر خیلی کبیر بودن فقید و اینا امام اما چه با هر غهری که میکردن با هر سگرمه‌ای که به ابروشون اینجوری می‌انداختن یه هشتیب درست میکردن یه دو جین از بزرگان نظام یا راهی حصر و حبس و قبر رو اینا می‌شدن یا یعنی اینکه فرار میکردن از کشور خارج می‌شدن یعنی کلا بدقهر بودن یعنی از یه جوری دیگه میشه گفت یعنی بدقهر بودن از ویژگی‌های بارز امام بود حالا امروز دربارش بیشتر صحبت می‌کنیم برو بریم Oh, <sighs> man. دیدین میگن مثلا اول صبح یا اول هر چیزی خیلی مثلا مغز بهتر کار میکنه گیرایی بیشتره با اینها برای مثلا مسائل علمی اتفاقاتی مثلا تحصیلی چیزهایی که قرار یاد بگیریم نمیزنه اول قضیه حالا برای همین ما هم چون حالا هوا سرد سرده البته اول برنامه چون حجتل سام شهی خسن انصاریان چند وقت میشه که منبر خیلی علمی و تخصصی و خیلی سنگین در مورد کیهان و فضا و دنیا و اینا رفته بودن خیلی بحث سنگین بود گفتیم اول برنامه این برستاداشون رو پخش کنیم براتون چون با عباد دیگری از جهان همه رو آشنا میکنن که خشن بگیرینشون چی گفتن گوش کنین خداوند 18 کندیل قندیل که کل آسمان های افغانه با میلیون ها کهکشان و صحابیش در یه دونه قندیله 17999 تا دیگه قندیل ما نمیدونیم چه اواملی در, در اونجا ها فریده بله این نظریه که برای همین گفتم میدونم سخت بود گیر... گیراییش حال براتون خیلی راجع به مسئله کیهانی و فضل این نظریه که به نظریه بهش میگن نظریه غندیلی این معروفه این نظریه جدیدیه کلا اصول علم کیهانشناسی رو به چالش کشیده کائنات ببینید از 18 هزار تا غندیل ساخته شده همجوری که آقای از انصاریان هاج آقا گفتن 18 هزار تا قندیل داره ساخته شده این کائنات که کل جهان ما توی یکی از این غندیلا قرار داره. اینکه حالا چرا غندیل و چجوری به این نجی رسیدن که جهان توی غندیل رو ما نمیدونیم. اینا خب جنساش خوبه دیگه. میدونی این غندیلا آیا این غندیلا مثل این های سر نافدون ها مثلا توی زمستون از جای آویزونن؟ بازم اینا رو ما نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ ما فقط میدونیم که جهان ما... توی یه دونه غندیله و 17999 تا غندیل دیگه هم به جز جهان ما هست احتمالاً اگه شیخ حسن انساریان یه توکیپا تشریف ببرن دانشگاه کمبریج این نظریه غندیلی جدیدشون رو با استیون هاکینگ مطرح کنن باور کنیشون اعتمالا رو ویلچر بلند میشن میدوند حالا ببین که گفتم او یس او هم یس الان حتی چون اصلا برای گلود بدون تجویز کنم بعد اون در دست سه قدومه که هاج اندیا خیلی مصرف میکنم برای اینکه صداشون مست دستاتر بشه خیلی واقعا مفیده یک تا هستم از تهران آخی ممنونم یک تا جام ببین چه چنوندایی داریم یه دوبار من تو برنامه صدا میتونه خس خس کرد و اینا گفتم الان خاک پاچیدن و اینو سری دست به زنگ شدن فمن دیگه بهتر شدم فکر کنم بهتر شدم هم میریزم دیگه میارم یه قلوب چای حالا بهترم. حالا امروز دیگه اگه وقت وسط برنامه هم گیر پاچای اینو کردم به خس خس افت دادم و اینا دوباره اگه اتفاق افتاد میگردم دنبال اینا کی گفتین بهدونه و چی بود قدومه؟ آن نیست حالا اینجا آقا قدومه اینجا نیست که. به زبان چکی حالا اصن چی میشه بریم بگیم قدومه کجا نمیدونم پیدا کنیم. خلاصه که حالا می‌ذاریم تو گوگل ترنسلیت ببینیم چی شد دیگه ای لازم بود بعد برنامه می‌ریم دمتون گرم. او oh یس yes. دیگه بعد از چند روز بارندگی از امروز دوستان خانم آقای اون دختر خانم آقا پسرها دیگه ابرا همشون کلن رفتن خونه هاشونو و بیشتر مناطق کشور این روزا هوا صاف و آفتابیه آفتابی هم ظاهران خواهد مون دیگه تا این دیما هم تموم بشه و بریم توی ماه بهمن ببینیم اونجا چی پیش میاد دیگه دمای هوا امروز توی بندر عباس و جزائر قشم و کیشه چیزی حدود 24 درجه بالای صف بوده و از اینور شهر شهره شهر کرد و یاسوج با حدود منفی 5 درجه کمترین دما رو در بین مراکز و استانها داشتن خب بازم نسبت به هفته های قبل که تا حدود منفی 11 درجه رفته بودن یه هوای نچندان سر محسوب میشه دیگه اتفاق قابل ارزی در عرصه هواشناسی نداریم جز اینکه، آرزو کنیم از همین آفتاب نیم بند زمستونی بتونیم به کافی ویتامین دی توی بدناتون زخیره کنیم و حالشو ببریم. ما امروز یه خبری شنیدم تو پراک چی شده؟ تو سرمای سف درجه خوب. همه سوار مترو شدم بدون شلوار آخ گرفتن ای بود عجب خبر جالب بود باید و همیدی؟ همید برنشان رفن تو رستوران کلی صفا و اشغال جریانی این چیه فرشی مترو سواریه بدون شلوار این یه توضیح بده بعد میخوام بدونم آره. که تو سام و جلال و بچه ها همه برابر نه شما هم شلوارک کشیدیم مترو توی هوای صرف درجه نه وای که دکوری میشه چقدر قشنگ میشد <تصفح> کاش اکتاشو توی گروه تلگرام میذاشتی فرشی شحاب هم عزیزم <تصفح> شهاب جان نکن نه, کن. نه. گرفتن سو میفهمیدن. آقا این خارجی‌ها چی زندگی اینا از رو بیکاری و دیگه نمیدن چی کار کنن؟ این های عجیب غریب بچل هفت و اینا درست میکنن میچپونن تو تقویم دیگه. دیگه سال چیزه میگن روز بدون چیز بوده. روز جهانی مترو سواری بدون شلوار بوده. تو پراگ هم خب ظاهراً دیگه به حال استقبال میکنن چرا که نه دیگه ملت استقبال می‌کنن فقط هم نبوده. یعنی توی چک نبوده، توی 60 شهری این اتفاق افتاده. بعد نه نه نه فکر نکن ما هم آره و, و اینا نه به جان خودم اصلا نه نکن آقا دوربین نه. بگی اونور بگی اونور میگم سامی نکن عکس نگیر اه. میگم چی پوشیدی ها میگم رنگ اون زیر میگم ها جلال برو برو آقا نکنید بعد حالا یه میکروپال نده دارم شهر میپوشم اه سامین <تصفيق> نمیذارن با سر آدم اصلا. سنا به خدا مفهم کنیم مثلا نمیبینین چما ما رو خیالم راحته. تو نگو با کجا رو میبیننم خانم آقا این دختر خانم آقا به سراب میدونید که مسئولین عزیز مملکت ما تا جایی که بحث وامدادن و حمایت و برای اینجور چیزا مطرح نباشه و فقط بخوان نصیحت کنن و مایه نظارن به شدت همه رو به ازدواج دعوت میکنن در همین راستا آزارن جدیدا برای کارمندان مجرد ادارات هم یه خوابای عجیب و غریبی دیدن گوش کنی؟ ایتتصاب بیان در فاز جدید این طرح بستری برای همسان‌گزینی کارمندان مجرد نهادها و سازمان ها فراهم کرده که اولین تفاهم‌نامه نیز امروز با قوه قضائیه منعقد شد. بله من فارسی‌شو عرض می‌کنم خدمتتون. فارسی‌ش چی میشه؟ یعنی مثلا اینجوری میشه فارسیش که خانم مجرد کارمند اداره میره توی سایت مربوطه همسریابی که اینا درست کردن. می‌نویسه اونجا من توی کارگزینی کار میکنم اسم و فامیل و بعد سایت مربوطه میره میگرده سرچ میکنه یه آقای مجرد کارمند گوگولی مگولی رو توی اداره دیگهی پیدا میکنه که مثلا ایشون هم توی یه جایی مثلا تو مایه های کارگزینی کار میکنه حالا کارگزینی هم نشد دیگه مثلا دبیرخونه یا مثلا امور اداری مثلا اگه کارمند عزیزمون تو امور مالی باشه اصلا را نداره چطور میتونن یه کارمند امور مالی و یه کارمند کارگزینی با هم تفاهم داشته باشن تو زندگی زن و نمیشه که اینجوری چی بگم والله یعنی واقعا مثلا فهمیدن اینکه مشکل ازدواج نکردن جوان ها این چیزا نیست و مثلا اگه ملت مشکل مالی و غیره و غیره و غیره نداشته باشن نیازی به سایت زدن و اینا ندارن رو این عزیزان مسئول نمیتونن بفهمن اینقدر سخته براشون این مساله نمیدونم والله چی سخته دیگه ما خیلی آسونش میگیریم شاید به خدا همه عروسی ماده خوش ها... همه با هم عروسی ماده نمیخواد که موزیک بذار همه عروسی بیا بیا ماچو ببوس رو شده شو قهاشتی خودمون و برنامه خودمون وقتی بین ولما اختلاف میافتدام می شماره 964. بدانید و آگاه باشید که بعضی از مسائل و اختلافاتی که بین قما در نظام جمهوری اسلامی پیش میآید اختلافاتی جدی و عمیق است. لاکن این گونه نباشد که در چنین مواقعی همیشه جست فیلسوفانه گرفته و با پوزخندی بگویید که جنگ جنگ است چرا که تا به امروز نیمی از یاران انقلاب بر اثر همین جنگ های زرگری راهی حبس و حسر و یا دیار باقی شدند لاکن چه فایده که شما باز هم بر تز جنگ زرگری خود پای فشردندگانیده امزاو از دیدن سرنوشت بعضی از بزرگان نظام مو تنشون سیخ شده ها و برای همین قهر و آشتی بین علما رو دیگه جنگ زرگری ندونسته های رادیو پس فر دا دادا دا دا, دا, دا, دا, دا. فرش جمعه اگه با کسی قهر کنم خودشم نمیفهمه باش قهرم سلام علیک درمولم کنم باش ولی بعد یه مدت متوجه میشه که منو محبت همیشگیو بهش ندارم و شششش خبردارمیش که باش قهرم خب عجب. باخر سعی میکنه که جبران کنه یا منم سعی میکنم که قدمی رو طرفش بردارم درحال اوزا اینجوری حل میشه خودم خوشم میاد از این هم میدونی چرا چون با میشه اون شخصو برای همیشه از دست ندم وقتی باش قهرم چه خوبه که خودت خوشت خوشت میاد از استایل خودت میدونی این خیلی خوبه اینم بالاخره یه دیگه منم خیلی از استایل خودم خوشم میاد سامی تو هم از استایل خودت خوشت میاد؟ خیره به خود انقب ماها هممون از استایل های خودمون میاد این یه جوری شدید بهش میگن قهر زیر پوستی این که شما گفتید یعنی یه جوری قهر میکنی چون که مثلا اصلا متوجه نمیشه طرفش بعد مثلا یه جوری هم آشتی میکنه که باز هم طرف متوجه نمیشه این کلن همه زحمت قهر و آشتی و اینا رو دوش خودشونه خب اینطوری. حالا ما میخوایم قهر کنیم چی چیتا 5 تا بشقاب نشکنیم دوتا لیوان تو سر کله طرف خورد نکنیم چهار تا فش ندیم قهرم اون غر نمیشه از اون برای آشتی کنیم و دایل دنبک بیاریم و امنون همجوری چیز ناپلونی ره بگیریم و اینا کل محل و شیرنی بدیم تا واسه میخوایم آشتی کنیم اینجوری هم برای زیر پوستی هم یه مودلیه دیگه خیلی خیل این هفته بهتون گفتیم از قهرها و آشتیهای بزرگ و تأثیر گذار خودتون تو زندگی بگید و بگید این قهراتون چقدر طول کشیده سرت چی بوده و گفتیم بگید چقدر اهل قهر کردن و لب ورچیدنین و وقتی با کسی قهر میکنین از اون بد بدقهرین یا نه سری به یه بهونه میرین آشتی میکنین؟ ضمناً گفتیم این هفته هم از این قهراتون که با برای ما میگید یه خرد خودتون کسب می‌کنید درد دل می‌کنید همین که همین برنامه رو بهونه با اونایی که قهرین آشتی می‌کنین این تریبون رادیو پاسوردم پذیرای آشتیکنان شماست. ا توی اینستاگرام آتش گفته که منو همسرم به سبک سریال خانه سبز با هم قهر می‌کنیم اما حرف هم زنیم، حتی شب بخیرم می گیم. ما شاء تو باش از این قهروا باشه. از کنم اینجوری که شما میگی وقتی قهر میکنی رابطتون بهتر هم میشه. به خودم حرف میزنین هم شب بخیر میگین خیلی هم عالیه اینطوری. سجاد گفته این اینستاگرام گفته من دیروز صبح با دایم که شریک هم هست بحثم شد بی ادبی کردم. از همین جا معذرت میخوام اما هنوز قهریم. دایی سجاد Heidari دایی سجاد Heidari این سجاد جوونه یه چیزی گفته دیگه خودش هم الان میدونه بیادبی کرده الان دیگه اصخایی کرد دیگه اصخای. دیگه شما به بزرگی کن ببخش دیگه سجاد ردیفه ها فردای جبه شیرنی بگی بر سر کار من صحبت کردم حله برو برو سلام فرش این هفته بایدو. اولین هفته یکی با جیبوتی قلیم یکم دلم گرفته آخه الهی قطع رابطه همیشه اولش سخته دیگه بمیرم اینه که من ازا بهتر سعی کنیم بیشتر وقتمونو مثلا با دوستایی که برام مونده بگذرونیم حالا غیر از جیبوتی امو پوتین امو بشار امو حسن نصر الله حالا جیبوتی و چند تا کشور عربی هم با اون قهر کردن که کردن چیکار کنی؟ نمیشه هم رو را همیشه راضی نگه داشت که. یه حادثه هستی یه پیش میاد. آنها یه حادثه نبود حادثه بود. آیا میخوای عاشقی باشم یا نبود. حالا حالا که حادثه بود دیگه حادثه بود رفیق کارش. آره. یه حادثه بود رفیق کارش. مامان مرزی تو فیسبوک گفته وقتی شریک زندگی تو بعد از 40 و چند سال زندگی با زن دیگه‌ای می‌گیری چه جوری میتونی فراموش کنی حتی اگر زندگی تو هم ادامه بدی هرگز نمیتونی اونی باشی که قبلا بودی زندگی پر از استرس ناباوری و زن میشه ای بابا نه دیگه ماما مرزی دیگه قهر کردن برای چنین مسائلی جواب نمیده دیگه قهر واسه مسائل کوچولوئه چون این شرایطی که گفت شما دیدی رابطه و زندگی اینو عوض میشه چون اعتماده از بین میره یعنی یا یا بلکل بندازی دور تموشه بره به کارش که دیگه آشتی آشتی آشتی کنی از این کلا مسئله رو فراموش کنی دیگه دو تا راه بیشتر نیست دیگه سخته میدونه خب اینجوری که از کامنت ها و از تلفن های این هفته و جواب های من میاد برنامه بعدی بعد از رادیو و بونگای شادمانی ورجید منافیه یعنی شما تماس میگیرین من به عنوان کارشناس میتونم راهنماییتون کنم مسائل و مشکلات خانواده غره و آشتی طلاق و ازدواج همه اینا رو داریم سامی هم میتونه کمک کنه چون دیگه تا اون موقع ازدواج کرده میتونه بیشتر بهتون کمک کنه تو این مسائل داره ساعت کو میده خیلی هم خوشحال حالا که پیدا نکردیم کو کو زنت بود. حالا <متصفح> پس ایمیل ماست دو شماره ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوند کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید. در تلگرام کانال تلگرام ما میتونید به ما جوین بشید و همینطور اپلیکیشن راژیو پسفردار و آیویسی هاش میتونن روی موبایل را یا روی آیپدشون بگیرن و داشته باشن صداتون رو به ما برسونید رادیو فردار رو به صورت زنده میتونید از طریق اون اپلیکیشن بشنوید و برنامه های راژیو پسفردار رو میتونید از اون طریق دانلود کنید تلفن های پیامگی 133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420 226 و 26، 21، 7 نه سی و9 کجایم برات می میرم توی دست سایه کوچ که تو هستی؟ محراشتی در سیاست داخلی وقتی بین علماء اختلاف طولاً بین سیاست عزیز مملکت ما قهرها و آشتیها به شکل‌های مختلفی اتفاق میفته الان دو سه مدل از این قهرها رو براتون سریم میگم تا بدونین چیه ماجرا. یه چند ثانیه دنه رو نزول مدتون بذارین تا بیان بگم اومدم ها اومدم قهر نوع اول قهرهای عاشقانه! قهر بین کسای اتفاق میفته که یه زمانی به هم عاشق بودن بعد رابطه شون تا یه مدتی هم به همون شکل عاشقانه ادامه پیدا کرده منطقا بعد از یه مدتی که از طرفین شروع کرده به شیلنگ دخت انداختن مثال يعماتون میدونید مثالشو دیگه معظم له و آجاغار افسنجانی تیپیک ترین مدل اینجور قهراها بودن هنوز البته کسی نمیدونه که این دو نفر آیا دیگه آشتی هم تو کارشون هست یا نیست ولی اونایی که معتقدن رابطه این دو نفر الان به شکل برو دیگه دوست ندارم اسمتون نمیخوام بیارمه تعدادشون بیشتر به نظر میاد رابطه این دوتا رو فقط دیگه ما فقط نقل کردیم دیگه ببینیم چی میشه قهر نو دوم اولش قهر و آخرش آشتی آها آه. بیا آه آه. بیا آه آه. بیا آها آه آه. بیا این چون آخرش آشتی داره و اول داریم میکنیم از اینا این اولش قراره آخرش این از اون دسته که یه روز روزگاری سایه هم با تیر می‌زدن ولی بعدن یهو ظاهراً زندگی و بالا بلندی‌ها چی جوری پیشرفته که با هم آشتی کردن اصلا یه وضعی مثلا مثلا محمد خاتمی ناطق نوری تو انتخابات سال 76 ریاست جمهوری رابطه‌ش یه جوری بود که بعد که خاتمی برنده انتخابات شد اینجوری وانمود بیشد که انگار تمامی کفر بر تمامی ایمان بیروز شده تو این مایا بود اما الان الان این دو نفر اینقدر به هم نزدیکه. اینقدر با هم خوشحالم فکر کنم حتی شبام برای هم اسمس شب به خیر بیفرستن دیگه دنیای سیاسته دیگه اینجوری کاریش نمیشه کرد بله. و اما قهر نوع سوم قهر نامفهومیه از و نامفهومه عرض میکنم حالا. بله این دسته سوم یا همین قهر نامفهوم اینا اصلا معلوم نیست از کجا به هم میرسن که هیچ تازهش هم اصلا معلوم نیست از کجا اصلا قهر میکنن اونم از اون قهرها از اونها مثلا کی مثلا امام خمینی و حاج منتظری آقا اصلا کسی نفهمید چه جوری شد که تو های هاگیر واگیر اول انقلاب آقا منتظری شد ولی ولیعهد نظام یا همون نایب و سلطنه کسی هم از اون طرف نفهمید چه شد ایشون مورد غذب قرار گرفت و در عرض چند روز به هیچ دولت تبدیل شد هیفته تا روایت در این باره وجود داره که در اونا هرکی میگه من نبودم دستم بود تقصیر آسیرم بود این وضعیت این قهر ایناست آقا روینند چک شرد واقعا حقشون بود خیلی فیلم خوبی بود هرکی ندیده بره ببینه کاپریو فوق بود تو این فیلم حقش بود کاش عاسکارم از بگیرن همهشون بله از ترکش های گلدن گلوب که میرییم سراغ کامران ببینیم که گلدن گلوب چه گلدن گلوب گلدن کلوب کلل گلدن غااطی کردم کامران بریم سراغ کامران را کامران درستشون میدلید گرانی ما از خطح آدمی است که میخواهد به چشم خود شااهده پیروزی باشد تامران ملک موتی آتیش کن بریم این گلد کلاب گلوب گلابه بالاخره ما نفهمیدیم گیر پاچ کرده گلدن گلاب گلابه بستگی داره به محله اگه بچه نظامات باشی یه جوری میگیم من مثلا بچه امام اماموسایم بودن یه جور دیگه میگفتنیم اینجا هم محلاش فهم میکنه با آها خیلی شما ولی میگین گلدن گلاب خارجی ها شما خارجی ها گلاب. برو بریم از دیروز ساعت 5 به وقت محلی 73مین دو دوره مراسم گلدن گلاب تو لس آنجلس برگزار شد موجه این مراسم امریکی جرویس بود که نسبت به اجراهای قبلی این مراسم با مزه تر بود فرشچان خیلی خوب گردون از سریالی که حالا جایزه گرفتن بگذریم تو بخش فیلم‌های سینمایی که مور، موریکونه آهنگساز درجه 1 که سینما برای فیلم 8 نفرت انگیز جایزه بهترین موسیقی متن گرفت سیلvester جایزه بهترین بازیگر نقش مکملو برای فیلم اکرید و کین دینست هم بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد برای استیب جابز بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم درام به لیونارد و دیکافی که دوستمون گفت به فیلم از گور برگشته رسید بهترین بازیگر نقش اول زن به برای لارسون برای فیلم اتاق بهترین بازیگر نقش کمدی زن هم به جنیفر لارنس تعلق گرفت، فیلم فیلمو به آرون سورکین داده شد در فیلم استیو جابز. جایزه بهترین فیلم کمدی به مریخی به کارگردانی رادی اسکات همینطور بهترین بازیگر نقش کمدی هم به مد داده شد در همین فیلم، بهترین کارگردانی فیلم درام همینطور فیلم سالم برای از گور برگشته به آلخان رو گونزالس ایناریو تعلق گرفت. ایناریتو بعد باشه فکر گونزالس ایناریتو اینا یه تلفن دیگه هم خدا خدا می‌کنم جایزه نگیره خیلی سخت سخته اسمش این اسم سخته اصلا جایزه نگیرن بهتره چه کاری آدم نمیگشت یه تلفون دیگه داشتیم این عاشقانه دیکاپریو کشتن ما رو یه خواشت کامران داشت کامران میشه بلی بلی و دیکاپریو بگی ببین اگه نمی‌دین اوسکار اسکار هم بگیری ما بریم شمع رو فرستیم آمریکا صحبت کن اوقات بودا وکری دیگه ما نمی‌تونیم بشین فیلم این قشنگی بازی کنی به دستا ندان یه حداقل اگه اسکار نادن شمع غری کنه که چون عکس سلفی معارفه اسکار باشی علی اصلا از ملبورن این اینم دیگه باز عاشقان دیکاپریو بودن که حالا هم می‌خندید ولی بعد بگم که اگه ای اینجا هم به پاشوانه بود <تصفيق> یعنی تا همین مرحل یک گولدن گلاب هم یعنی شما مقداری نقش داشته دا و همه جا نقش داشته <تصفيق> از هاشی های مراسم برامون بگو رو چند تا اتفاق خیلی به نظرم از اتفاقای مهم محاشیه ای مراسم بود اولا من نمیدونم تو این هوای 100 تو لس آنجلس این روزا اکثر خانم ها تابستونی پوشیده بودن من همش با اومال یه انسان دلواپست بودم یه وقت پک و پرلیش نشد این یکی آخی. آره یکی هم این سخنرانی ردلی اسکات بود که چهار صفحه نثخشو خون وقتی هم که موزیکی برای اعلام اتمام صحبت شروع شد بذارن گفت شما موسیقی تونو بزنین من تا نخونم نمیرم <تصفح> <تصفح> کی خوب بود که میکرو از میکروفون نمی که کم بوده بود از من و تو و سامی و اینا هم تشکر بکنه. <تصفيق> مسئله بعدی که به نظرم جالب بود انتخاب فیلم مریخی با عنوانش فیلم کمدی بود چون به نظر من خیلی اصلا فیلم کمدی نیست داستان فضا نوردی که تو مریخ جا مونده هزار تا بدبختی میکشه برای زنده مونده. فکر کنم هیئت داوران فیلم جزو مرفهین بیدرد بودن که مصیبت مردم براش خنده داره بابا. عجب <تصفيق> <تصفيق> خب ممنونم اینم از گولدن گواب و هاشیه هاش امروز متاسفانه تو خبرها اومده بود که دیوید بویی خاننده بریتانیایی در سن 69 سالگی از دنیا رفت اونم بعد از مورزه با بیماری سرطان چیزی نداری به این خبر اضافه کنی کامران عزیز چرا اول اینکه جمعه پیش ترین آلبوم بوئی به اسم بلک استار از منتشر شده و در اینکه بوئی که اصوله موسیقی دهه هفتاد بود سابقه بازیگری هم داشت از جمله فیلم گرسنگی تونی اسکات توش بازی کرده بود و پرستیج ساخته کریستوفر نولان بسیار خب. ممنونم ازت کامران عزیز با خداحافظی می‌کنیم تا فردا اما علاقمندان سینما خصوصا اونایی که فیلم بزرگراه گم شده یا همون لاست هایوی دیوید لینچ رو دیدن ساوند این فیلم هم کاری بود از دیوید بویی که به اتفاق بخشش رو میشتو. A blonde leaf beyond, beyond, beyond سلام 23 و شب را ضمن استقبال از بالاخره نزولی شدن قیمت عرض در بازار ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می <تصفيق> اعلام شدن تمام جاده های کشور به سیستم پلاک خودرو تا سه سال دیگر و درخواست گروه های لایکش جامعه از قدرت های جهانی که نمیشه تحریم اینجور دمو دستگاه های و بر ندارین ما به زندگیمون زندگی تشخیص 47 نفر در استان اسفهان با گروه خون نادر اوی بمبایی و سوال کارشناسان مبنی بر این که نکنه هند جای پول نفت خون بنجلم بهمون غالب کرده شما زدیم به اینا گروه خونشون اینجوری شده؟ و رد صلاحیت چهرههایی چون رسایی و زاکانی توسط هیئت‌های بررسی صلاحیت نامزدها و گلی فعالان عرصه تنز و فوکاهی جای اینا تو مجلس آینده نباشند ما مباد بریم لبوب بفروشیم جای کار اصلیمون مهمترین نناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با چهچهی همکارم بلبل بل. سلام. بنا به دریافتی در دیدار صدر اعظم سابق آلمان با علی خامنه‌ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران، خانم نقش مترجم را ایفا کرده که زواهر وی اصلاً با شعونات اسلامی مطابق نبوده است بنابراین گذارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز جیگری ای آقای میکروفون تلا این شالش که شو. قرمز جیگری نبوده که قرمز چی بوده پس بول بول. من خودم دیدم اکسشو شالش قرمز لاکی بود نه نه نه ببین دیگه اشتباه نکنی قرمز جیگری بول بول نگاه کن اینا ای آقای الان... میکروفون حالا جیگره... و... دوستان سر سفاوت رن کنین شما چی میگی بابا ما خودم همین جد آبادم بلبل بل نقاش بدن اصلا خانوادگی ما تو کل رنگی ما نقاش چی ساختمون منظورتونه دیگه هر من نمی دونم ولی باور کنین قرمز لاکیه ای بابا باشه بابا حالا تو میگی لاکی ما میگیم لاچی دیگه ولی بدونش اشتباه میکنی بل بلا بره بره از هر عشقته بگو دیگه بره بله شکلش کنم بله بگو, بگو بله با عرض پوزش اسلام میکنم بنابراین گزارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز لاکی بر سر انداخته بود و هجاب کاملی هم نداشت به همین دلیل پیشبینه میشود به زودی نیروهای کفن پوش در سطح خیابان ها ظاهر شده و روزنامه های کیهان و جوان و خبرگزاری چون فارس و تسنیم از مسئولین دعوت کنند در دیدارهایشان از خانمهایی به عنوان مترجم استفاده کنند که حجاب افراد چون خانم الهام چرخنده را الگوی خود می‌دانند پایان مرشوه اخبار ای بالی. همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه از های کفه وزارت برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما رو گشایی کنند. منو بله. در مشکل گشا ما در خدمتیم بفرمایید سوالات خودتون بله. رو بنده پاسخ خواستم. مشکل من به تو وقت نمیدم. سلام علیکم شاکی میشی وقت میدم زایه میکنی اینجوری. چیه فاز داری چی من نمیگیرم. بله. من به سلام عرض میکنم و این ایام رو به هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم بله کلن به هیپوتالاموسش هم نمیگیره حرفای مال مشکل ایام چی چی رو تبریک میکیم خبری نیست که امروز ببخشید اشتباد من نبود چون فردا روزه سالگرد تشکیل شورای انقلاب از سوی حضرت امام بود من کردم امروز یک لحظه دیگه. غبلن کاری موذی داشتی الان کوری موقت هم گرفتی به سلامتی خب بگذریم مشکل جان بالاخره این ماجرای بلد. حمله به سفارت چی شد عاملان شناسایی شدن نشدن چی شد حالا بر اساس تحقیقاتی که سربازان گمنام بعمل آوردن خب خب. جمعی از عوامل خود سفارت تعدادی از منافقین و فتنه‌گران و نفوذ ها در این عمل زشت دخالت داشتن یا خدا یعنی پس اصلا کلا این بچه‌ بسیجی‌ها و اینا هیچ نقشی تو این ماجرا نداشتن دیگه نه این چی ببینید بر اساس تحقیقات صورت گرفت تعداد بیانی ریش مصنوعی یک بار مصرف هر محل کشف شده و اینها در واقع میخواستن با تغییر واخر خودشون رو شبیه نیروهای ارزشی جون بزنن که خوشبختانه این تو تخت خنثی شد دیگه یعنی چه جوری مشکل آخه یعنی فیلمایی که هست ازشون همه با ریشو پچ اینا عمل کردن همش مصنوعی بوده اینا بالا بالا متاسفانه اینها برای ذربه زدن به نظام از این شیوه واقعا کاسیف استفاده کرده بودند. خسته نباشید با. پس اصلا کلا کار دشمن بوده. ماجر را از نظر شما دیگه همش بالا دادن. بله دشمن همیشه در کمینه تو با این مم. حرکات با اصلن نظام ضربه های مهلک اینجوری وارد کنه دیگه. ای مشکل یک سوال. ما گیافمون بله. شبیه خنگاست. بله یا شما خودیتون تنهایی به این نشریه رسیدید که ما خنگیم؟ الو این برام سوال شده خسرا. ای... شما نمیادید میشه جای خودت رو عوض کنی ولکوم با هیچی الو. نه دیگه فکر کنم همون فتنگره و نفوزی ها خراب کردن حالا بب. به هم خورده بب. بله باب تشکر کنم توجه شما طب شبی دیگر و برنامه دیگر بله و بله مشکلی دیگر خدا نگه دار حالا ما به هم زدین مشکل از بس که خالی بست خجالت هم نمی کشه با این واقعا چی فرش کرده باره من نمی چهار سال پیش در چنین روزی مصادف با 21 دی دیماه 1360 شمسی محمد نصرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس بدون دنیا آمد. برخی مورخین معتقدند شهرت وی از وقتی افزون شد که گل صعود تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2006 آلمان به ثمر رساند. اما مورخین زیادی نیز شهرت اصلی او را به خاطر صحنه معروف شادی پس از گلش و همراه شیس رضایی در بازی پرسپولیس ملوان می دانند آنچه در مورد نصرتی است، این است که وی علاوه بر داشتن ضربات سر بسیار دقیق از انگشتان قوی و به درد بخوری نیز سود می <تصفيق> پلیس خسته هنوز از پانن شسته پشته دشمنانش رو یکی یکی شکسته پروین پا عمر که دیده اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته تو جاده زندگی پروین پاهش شکسته تو جاده زندگی پروین پاهش شکسته مردان توی میدان ها میگن با هم چیدی که دوستت ندارم با چرا, چرا برام کارتون نمیذاری؟ بلای من قربونت بشم اما چرا کارتون نمیذارم کارتون میذارم چشتو ببن اما سامی اون کارتونو پلنگ سورتی بسار آره الان پخش میشه اینا دیدی همجون که چشتو بسی همونجون تجسسمش کن پلنگ سورتی الان میاد الان میاد ببین الان پلنگ سورتی اومد الان داره این دیواره رو رنگ صورتی میکنه. ای این آقایی کیه ای داده بیداد انگار از زنگی صورتی خوشش نیومده رفت قلم موها الان دعواشون میشه آخر. حالا از پلنگ صورتی میریم سراغ شهر موشا. نه نه دیگه بچهای گلم دیگه الان وقت بزرگتراست دیگه الان پلنگ صورتی بچاگیه الان میخوام میریم سراغ بزرگتر. بزرگترا شما یا شهر موشا رو دیدین یا ندیدین؟ حالا اگه شهر موشا رو ندیده باشین ولی خب در مورد شنیدین دیگه شهر موشای به حال یه کار عروسکی چند وقت پیش خانم مرزی برومند قسمت دوم شهر موشا رو ساختن که تبدیل به پرف ترین فیلم تاریخ سینما ایران شد. به تازگی استاد رایفی پور که ما در ایشون می‌بینیم که در آینده برای خودشون رامین پور از قدی بشن، با نگاهی متفاوت به این فیلم عروسکی نگاه کردن و ثابت کردن که شهر موشا در اصل یک توطئه صهیونیستیه. گوش کنین موشا همشون میخوان از شهر گربهه که تو عذابن برن به یه شهری به یه سرزمینی که پر از گیلاس و آلبالو. برن به عرز موعود برسن. میرسن به یه رودخونه. نیل فرعونم افتاده دنبالش. اینا از رودخونه رد میشن. فرعونم تو آب چی؟ آب میبندیش. هر جا میخوان وایستن شوفار میزنن. برد این شوفار مال کیاس؟ این بوغه که میزنن. این اتفاقیه. بگید اتفاقیه. Mino warte vorge wenn موش رودخونه گربه. سرزمینشو غوغه ها. آخه تا کی میخواین سرتون رو بکونین زیر برد؟ این ولش کن اینا اصلا میگیم اتفاقیه ربطتی هم به چی نداره بقیش رو گوش کنیم. یه گربه سفید رو توی آب میاد سمت موشها و مشاین از آب میگیرن این دو شه 11 میلیارد تو فروش داشت. گربه سفید فرعون گربه چیه؟ سیاه تو عدده نظر ده از یهودیان خود موسام از جنس چیه؟ اون وریاس موش های بزرگش میکنن با کمک این گربه اینو میزن. دیگه اینو چی میگین؟ موشا گبه سفید در رو میرناعذااب می گیرن بزرگش میکنن که بد این گربه سفید کمک میکنه که موششا گبهسی ها هر چهکس بدن داستان حضرت موثار رو خوندین دیگه الان این اتفاقیه آتی درست خوب هیچ ربطی نداره به داستان حضرت موشسا ها اونجا ماجرا کاملا کابللا برکس اتفاق میفته فرون درواغ گربسی های موثه رواعذاب میگیره بزرگش میکنه، میکار کار نداری ولی خب این برای ردگم کیه بله پس این هم شد چی شد دو تا دلیل که شهر موش اثر سییونییسیه اما بدترین قسمتش مونده هنوز اینوگووش کن اینگووشکن؟ این شهر سکولار سکولار صبح تا شب فقط می‌زنن و میرخصن و می‌خونه اون یکی از اون طلاق گرفته سبک زندگی کاملا آمریکایی و فلان و مسئول فرهنگی ما میفهمن اینا رو یا نمیفهمن اگه نمیفهمن برن استفا بدن اگه میفهمن بگن با چه عنوانی مجوز دادن این ای واو ایلا واوی آقای مسئول فرهنگی که به شهر موش‌ها دو رفتی مجوز دادی تا چه خودت رو به خواب این شهر موش‌ها یا زبونم لاس وگاسه چرا باید همش موشا تو این شهر بزنن و برقصن؟ چرا نماز نمیخونه کسی اون تو؟ آقا تو یه مسجد نداره این شهر. نماز جمعه کو؟ امام جمعه کجا؟ بعد اون وقت خانم موشا طلاق گرفته داره تنها زندگی میکنه؟ این مظاهر سکولاریسم رو چرا توی ذهن بچهای ما میکنین؟ حالا باز خوب آقای رایفیپور هست. حواسش به همه چیز هست. عین پلیس فتا میمونه لامصب. این درزهای ناپیدای نفوذ دشمنو میبینه. والا با این شهر موشاشون. آیا از نفوذ فرهنگ غرب به ذهن و فکر کودکان و نوجوانان خود بیناک هستید؟ آیا از اینکه که ها مغز کوچک کودکان شما را شستشو بدهند هراستاوید؟ دیگر نگران نباشید مؤسسه آنلاین نفوذ پجوهی استاد رائفی پور برگزار میکند جلسات نقد فیلم و کشف دریچه‌های نفوذ فرهنگی در آثار سینمایی و کارتونی و پرکردن تزمینی کلیه درزهاد رحاق فوق تخصصی نشامل شناسی و پیدا کردن اناثر سهیونیسی در آثار هنری و سرگرمی و کشف ارتباط بین اناثر بظاهر نامرتبط با متود دکتر گودرز شغاقیقی من پسرم سه چهار سالش و از وقتی کارتون نیکو نیکو رو نگاه کرده دائما بیقراری میکنه. ما اول رو نمی دونستیم ولی بعدا با صحبت دکتر رایفی پور فهمیدیم که چهار دست توی اون کارتون نماد شیطان پرستیه و قرب سعی داشته اینجوری به امیرتا ما نفوذ کنه که خوشبختانه به موقع فهمیدیم و تونستیم مشکل رو حل کنیم. الان پسرم به جای کارتون فقط روزی سه نوبت توباشی هوش میده و خیلی بهتر شده. علاقه مندان برای شرکت در این دوره ها میتوانند همه روزه به مطالب ارزشمند ایشان در فضای اینترنت مراجعه نموده و حساسیت های خود را نسبت به حجمه فرهنگی دشمن افزایش دهند مؤسسه آنلاین نفوز پژوهی استاود را به فریبورز غریب سلام سلام سلام به همه گی فرشی جان میدونم الان مراسم توپ طلا زاهرن در جریانه اول میخوایی خبر داخلی بده تا بعد بریم سراغ مراسم توپ تلا تا تو تایش گوت ایده یه خبر پامزه داشتیم امروز از سوء استفاده یه مدیر فوتبالی از ماجرای زندانی شدن سوشا مکانی این آقای مدیر عزب. که نامش گفته نشده بعد از باس داشته سوشا به چند تا از بازیکنای تیم خودش گفته پای شما هم تو این ماجرا گیره و بچون بازداشه شما هم صادر شده اما اگه میخوان آبرویی نشه من مشکل رو حل میکنم به شرطی که رضایت نامه بی رضایت نامه و هر چیزی که من میگم باید بریم عجب یعنی ما کنم این ماجره سوشال مکانی تا سازمان ملل هم بکشای همجوری پیش بره خدا به خیر کنه ولی ورزین سامی ما رو کشت اصلا حواشش به برنامه نیست همش تو زوریخ خب سوئیسه چشمش مراسم تو طلا چه خبر از این مراسم آره حق داره همه فوتبالی و الان سرگرم همین من تا دقایق دیگه اعلام میشه این مراسم پرزرگ و برق همچنان ادامه داره اما همون ماهی کچولوی خودمون که تو تور هیچ دفاعی گرفتار نمیشه احتمالا چند دقیقه دیگه نامش اعلام میشه به عنوان برنده توپ طلا چون فیفا توی یک خبر لو داد 3-4 روزه پیش این قضیه رو به تاریخ ته میشه با 5 تا توپ تلاد مسی، اما اینم باید بگم که به قول بعضی از فوتبالی واقعاً واقعا این مسی به یه کره دیگه تعلق داره هواشی مراسم چیا بوده فری برز تا الان فرشید مهمترین این صندلی خالی سپلات رئیس فیفا بود که هر سال با کلی ناز و غمزه میومد و جون نام برندر اعلام میکرد و کلی درگوبر بود امسال به خاطر رستایی مالی فیفا محروم بود و تو مراسم حضور نداره. سیخ خب. ممنونم ازت فری عزیز ما خودمون توپ طلا رو اصلا میدیم به مسی همین جوری تنوز اعلام نشده و شانس اینا به خاطر سوتی که دادن عوض نکنن به چ لذا. ممنونم تا فردا فریبرز عزیز. فردا برو به افتخار مسی. غرق کردن باید بگم که همیشه هم بدنی گای اوقات به نفع آدم تموم میشه بعضی مقایسه‌ای هستن با آدم غرق میکنن که به قول معروف شغالی که از باقی غرق کنه به نفع ساباقه حالا اون اینجوری افراد که غرق میکنن با جیبوتی خودمونم حساب نمیکنن کلا آدم عاقل که غرق نمیکنه داره من اصلا اونم با زنیش ایننی غرق کنی شام نخوابی شب بدی تنو بگی گوشه یه شب بخیرم نتونی بگی آقا نکنید نکنیم نکونند علاجی اخ تو اگه فقط دلیلمون برای قهر نکردنم این شام و شب به خیر و اینا باشه برای همسرمون میشیم همون شغاله که اما اول گفتی دیگه بهتره باقش قهر کنه بره ولی با برای قهر نکردن با همسر آقا به نظرم هزار یه دلیل موجه از این دو تا وجود داره ها برای همین حالا اونو ولش کن بخش آخر حرفاتونو هستم ما قهر نکنید نکنیم نکنند اما بریم یکی جاهایی که قهر آشتی در نظام به و در برابر چشم همگان اتفاق میفته صحنه علنی مجلسه ده دبهای مجلسو البته همیشه هم خب زیاد نوبت جدی گرفتن مورد داشتیم دو طرف تو مجلس بدترین حرفا رو هم به هم زدن حتی عمل شبه یقه گیری هم انجام دادن بعد روز بعد تو مجلس تو مایهای خسرو فراد دست انداختن گردنم یه سلفی گرفتن یه وقتایی هم هست که نماینده با رئیس مجلس درگیر میشه و قهر میکنه اینجور مواقع خب نماینده شروع میکنه داد و داده بیداد کردن بعدم رئیس مجلس خیلی ریلکس یه دکمه رو میزنه میکروفون طرفو میبنده و نماینده در اقدامی خیلی قهرمیز استعفای خودش مینویس رو مینویسه و مجلسو ترک میکنه جور قهرها هم البته معمولاً بین یکی دو ساعت تا یکی دو روز دوام دارن و نماینده قهر کرده معمولاً خودش با پای خودش برمیگرد و آشتی میکنه بالاخره حقوق و مزایای نمایندگی مجلس چیزی نیست که بشه اونو قربانی این جور دعواها و قهرها و اختلاف نظرات کرد بل. امشب هم هموم شدیم. زندگی معجونی از رویا و واقعیت ما آدم هم در تلاشیم تا به رویاهامون هامون برسیم و از واقعیت کم نیاریم و نقطه رسیدن هم جایی بینابین این دو نقطه این وسط مهم اینه که افوق رویاها ها چقدر دستیافتنی و رسیدنی به نظر بیاد رویاهای من، رویاهای تو، رویاهای ما رویه هایی که از دست دادنشون زندگی رو با یه مشت واقعیت و تلخ و زمخت و بیره تنها میذاره رویه هامون رو برای هم برای با هم بودن حفظ پیفزم شبتون خوش تو رو از دور میبوسم تو رو از دور میبینم برای من همین خوبه بگیرم قد دنیا تو ببینم هر کجا میرم از اونجا رفت شدم تو همین که حال من خوش نیست همین که قلبم آشوبه تو خوش باشی برای من همین بد بودنم خوبه به این که افزم زمان چی بود به این که تو چی Moment.